اکسر عمل پسر یازده ساله که به او بگویند پدرش او را دوست ندارد و هر از دوست نداشته چیست حالا دیگر من هر وقت به خانه بالای تپه می رفتم مکررن پدرم کلمات و حرکات او و حالات چهرش را مورد مطالعه قرار می دادم که احساسات واقعیش را نسبت به خودم درک کنم چه سمیمانا گرم باشد و چه بی تفاوت و سرد هیچ وقت چیزی از او در نیاوردم چون همان پدری بود که بود این من بودم که تغییر یافته بودم بیان که خودم متوجه شوم رفتارم با او رسمی میشد. مثل این بود که در خانه خودم بیگانه شده بودم یک روز از خاطرم گذشت که میتوانم مسئله را با سوال سریع از پدرم درباره عضو و اهبار تولدم حل کنم. اما از این کار می ترسیدم؟ از چه می ترسیدم؟ آیا از این میترسیدم که بفهمم همه ماجرا راست و درست است؟ آیا از این میترسیدم که اصلا جوابی نشنوم؟ پولت چنان تماشاگر و مصاحب خوبی بود؟ که پدرم هر روز هزاران حقوق و شیرینکاری برای او در می‌آورد که یکی از دیگری عجیب‌تر و محکتر بود. پدرم هنگامی که سر خلق بود از روی کاناپه یا صندلی موهایش را روی پیشانی میریخت و دستش را در جیب جلیقهش می‌کرد و در اطراف اتاق میخرامید و درست قیافه ناپل اون بناپارت را که مسئور او بود به خود میگرفت. بعضی وقتها که شب به نظرش دراز میآمد با گرفتگی از جا بر می‌خواست و با عبهت تمام اعلام می کرد، من میخواهم بروم بخوابم. شب خیر عزیزان من. و بعد پشت کاناپه میرفت و در امتداد آن قدم میزد و به تدریج با هر قدم چونان خم می شد که آدم خیال میکرد از پله پای می رفت. به صورتش حالت قبللهانه ای می میداد. آخرین چیزی که از او دیده میشد سرش بود. که آن را نیز با حالت ابلحانه نگه همی داشت حالا که پولت با ما زندگی می کرد ما خیلی کارها میکردیم. کردیم پدرم وقتی تنها بود خیلی به فکر ما می افتاد. اما حالا اغلب گرفتار کار یا قوتور در اندیشه های ناگهانی میشد و ما را به کلی از یاد می برد پولت ترتیب کار را طوری میداد که ما هم در گردش و تفریق تحتیرات آخر هفته شرکت داشته باشیم گاهی بالای سر پدرم که پشت میز تحریر نشسته بود و مینوشت میرفت و او را وامی داشت که ما را به سینما گردش کنار دریا و یا باغ وحش ببرد. میمون های پدرم را یاد گوریل میانداختند که در سوماترا بود. او همیشه خاطرات و تخیلات شیرینی از سفر به مشرق زمین داشت. او با اندک روب از گوریلهای های سوماترا و سرهای گنده و حیکل های قول آستایشان سخن می گفت. اما از اجایه به روزگاران که اگرچه او تقریبا تقلید همه چیز و همه کس را درمی آورد از جمله تقلید کرکست که آن را از زیباترین موجودات زنده می شمرد، هرگز ندیدم تقلید میمونی را در آورد اغلب روزگردش را با شام در رستوران کوچکی در محله چینی ها یا جای دروفتاده دیگری به پایان می رسندیم گاهی مادر پولت هم همراه ما می آمد خانم گدارد از خیلی جهاد شبیه پولت بود. هر دو چشمان درخشان داشتند، مثل هم میخندیدند و شوخ طبیشان مانند هم بود. میانه پدرم با خانوم گدارد خوب بود. گمان میکنم او از لحاظ داشتن روابط خوب با مادر زن سرمشخ آموزندهای بود. زیرا با همه مادرزنهایش روابط خوبی داشت. حتی بعد از طلاق پرکشمکش و دعواق دادگاهی با مادرم دوستی سمیمانی با نانا داشت. روابط او با خانوم اگنس آنیل، مادر زن کنونیش نیز، بسیار خوب است. اما پولت تنها کسی نبود که در تابستان آن سال برای ما ترتیب گردش رو سترگرمی میداد. گاهی پدرم به کلش میزد که همه ما را برای گردش کوتاهی با اتومبیل ببرد. اگر بشود رانندگی پدرم را معمولی دانست می توان گفت این در بیشتر خانواده ها کاری معمولی است. او در این موقع همیشه از اتومبیل فورد چهار در خود استفاده می کرد. این اتومبیل را سالهای سال داشت، چون از وسایل عجیب و غریب اتومبیل‌های مدل بعدی دلخور بود. او در سی و پنج سالگی رانندگی یاد گرفته بود و به این کار مباهات می کرد. هنگام رانندگی لباسی می پوشید که برای بیرون رفتن مناسب بود و عینک دور در قهوه ایم زد. یک شاکت اسپرتی می پوشید و کلاه شاپای قهوه را کچ می کساشت. همه به طرف اتومبیل راه می افتادیم. با کمک پدرم جلو می نشست و ما هم بالا می رفتیم و در عقب اتومبیل جا می گرفتیم. بعد خودش سوار می شد. وقتی سوییش را میپیچاند راست مینشست شانههایش را عقب میداد و سرش را یکوری میکرد. چانهش را جلو می آورد و فرمان را به سبک استاددان میگرفت. بعد به راه میافتدیم. اولش ملایم میراند ولی بعد حواستش متوجه مناظر اطراف می شد و پایش را خود به خودی روی گاز فشار میداد. ناگهان به خود میآمد و پایش را از روی گاز بر می داشت. با همینطور گاه تند و گاه کند جلو می رفتیم در حالی که پدرم همه جا را نگاه می کرد جز جلوی خودش را. پدرم خوشش می آمد که اینطور تظاهر کند و بگوید همه ما جهانگردانی هستیم که آمدیم خانه های ستارگان هالیوود را بازدید کنیم. ادی زیادی از این ستارگان در همسایگی ما بودند. علاوه بر خانواده پیکفورد که بالای سر و خانواده لویت که پایین خانه ما بودند، کی فرانسیس رونالد کولمن، فرداستر و توم میکس در نزدیکی ما زندگی می کردند. هر وقت از جلوی خانه توم میکس رد می شدیم، من و سیدنی سرمان را از پنجری اتومبیل بیرون می آوردیم که او را با لباس گاوچرانیاش ببینیم، اما هرگز نمی دیدیم. وقتی به حوالی خانه پدرم می آن را با طبختار فراوان نشان ما می داد. اگر ما به این جست تحصینامیز او میخندیدیم دلخور میشد و با شکایت به پولت میگفت نزدیک خانه تومیکس میکس که میرسند چنان از پنجره سر میکشند که نزدیک است از اتومبیل بیرون بیفتند. اما مرا که بزرگترین هنرپیشه کمدی جهان هستم به چیزی نمیگیرند. گاهی اوقات به جای دیدن مناظر شهر پدرم تصمیم میگرفت که ما را برای سفری درازتر به یک ببرد. آه که عجب مناظری بود و عجیب رانندگی چمنهای زیبا، گلهای روشن، درختان شاهبار هر کدام کافی بود که پدرم رانندگی را فراموش کند گاهی او یک راست از جلوی چراغ قرمز رد می شد پولت فریاد می چارلی، چارلی، چراغ قرمز است. پدرم می پرسید کدام چراغ؟ پولت که خودش راننده خوبی است می گفت چارلی دقت کن اما پدرم اصلاح ناپذیر بود اغلب سرش را به اطراف می برد و به مناظر آن نگاه می کرد و به کلی فراموش می نمود که پایش روی گاز است پولت ناگهان جیغ می کشید. خداوند و چارلی به جاده نگاه کن اما پدرم به موقع چشمش به جلو می و فرمان را به سرعت می چرخاند تا از تصادف و اتومبیلی که از جلو می آید پرهیز کند پالت آهی میکشید و میگفت خدایا عجب راننده ای بعد زیر خنده میزد من و سیدنی هم میخندیدیم چون واقعا ماسک بود پدرم همیشه از گناه شوخی های نیشدار پالت درباره رانندگیش اش میگذاشت و آنها را جدی نمی گرفت او که از هر نصیحت و اختاری درباره رانندگیش از طرف کسانی که در اتومبیل بودند براش می میشد وقتی پای پالت در میان بود آن را از او میپذیرفت. او نمیتوانست تحمل کند که اتومبیل‌های دیگر از او جلو بزنند. زیرا به نظر او سایرین خیال میکردند که او نمیتواند به سرعت کافی براند. صدای بوخ از عقب و کنار که معمولاً او را متوجه میکرد از خط سفید وسط جاده خارج شده است عصبانیش میکرد. در این موقع مثل این که تیر خورده باشد از جای میپرید و میگفت احمقا چرا اینقدر سر و برای من در می آورند؟ من خودم می دانم که چه باید برانم؟ چیز دیگری که پدرم را در موقع رانندگی عصبانی می کردیم بود که راه را به اون نشان بدهند. این را دلیل آن میدانست که به حس جهتیابی او توهین کرده در واقع هم با وجود آنکه خودش به حس جهتیابی خود ایمان کامل داشت جهتیابی او چندان خوب نبود. بیتوجهی کامل او به نصیحتی دیگران یک روز بیش از همیشه به چشم خورد. در آن روز از میان مه قلیزی با تیم داراند به قصد بولوار سندسیت اتومبیل میراند. تیم با دلهاره به خارج نگاه می‌کرد. ناگهان علامتی دید که نشان می‌داد آنها عوضی رفته اند و دارند به خانه بر تیم گفت از این طرف آمدیم باید از آن طرف می رفتیم. پدرم سرش را تکان داد و گفت نه هنوز نه هنوز. تیم دوباره با حالتی سرزنش آمیز گفت، آخر راه ما از آن طرف است. پدرم به جای جواب با سرسختی و لجاجت در همان راه به راندن ادامه داد. تیم ناگهان با ترس و لرز گفت، نگاه کن چارلی، آخر ما در بولوار نیستیم، ما الان در جاده فری هستیم، نگاه کن در کنار پرچین خانه هاست، پدرم نگاهی تند از شیشه ماشین به بیرون انداخت و با خونسردی یک آدم نزدیک بین گفت: نه بابا، پرچین کنار چمن خانی است، همین الان دور میزنیم. و باز در آن جاده فرعی که بولوار را قطع می‌کند به راندن ادامه داد و از پرچینها که حالا به خوبی معلوم بودند گذشت. فقط حاضر نبود اشتباه خود را قبول کند. او هیچ وقت حاضر نبود اشتباه خود را بپذیرد. بعد از دو سه کیلومتر که در جاده فر ایراند باز به طرف بولوار پیچید و چنان به راندن ادامه داد که گویا طبیعی ترین راه برای رسیدن به بولوار همین بوده است. البته این گونه ماجراها ها سبب می شود که گردش ما با اتومبیل بسیار طولانی شود. گاهی خایق سواری می کردیم و گاهی هم برای دو سه روز به کوه می رفتیم و در آنجا پولت پاتیناش به ما یاد می داد. خوب بازی میگرد گاهی که پدرم مشغول بود پلت به تنهایی من و سیدنی را به کنار دریاچه آروهت یا بیکبر بر در آنجا رسم ما این شده بود که قبل از رفتن نزد پولیت و شنیدن داستانهای موقع خواب به بسترهای خود نرویم در آن تابستان خیلی تفریح کردیم اما اگر مسئلهی در برابر آدم باشد حتی در موقع تفریح هم جلوی چشم آدم جلوه میکند هفته ها می کوشیدم را مادرم به من گفته بود از مغزم بیرون کنم و به کارهایی که دورا برم بود مشغول شوم اما در هر لحظه این فکر که ممکن است من در خانه پدرم فرد مزاحمی باشم به سراغم می آمد و به من دهنکجی میکرد آیا پدرم فقط مرا تحمل میکرد و دوستم نداشت این سوال وحشتناکی بود برای آنکه من او را دوست داشتم و خیلی دلم میخواست او هم مرا دوست داشته باشد اما دیگر به این مطلب اطمینان نداشتم که دوستم دارد در واقع از هیچ چیز اطمینان نداشتم لاغل این را میدانستم که دیگر اینطور نمیتوانم زندگی کنم آن روز را خوب به خاطر دارم پلت برای درس رقص یا آواز رفته بود من و با برادران کریزل در کنار استخر بازی میکردیم همونطوری که اغلب در کودکی من اتفاق میافتاد حس کردم که نیرویی مرا به سوی خانه پدرم میکشاند. به این فکر افتادم که او چه میکند از استق دور شدم و به خانه آمدم و نگاهی به داخل اتاق انداختم. پدرم پشت میزش نشسته بود و کار میکرد. چون با پولت ازدواج کرده بود بیشتر در طبقه پایین و در اتاق جلویی کار میکرد. توی اتاق رفتم و ساکت شروع او ایستادم. احساسی آمیخته از گرما و تنهایی داشتم. این احساس دردناکی بود که تازگی ها با آن آشنا شده بودم. فقط یک طول اتاق را با من فاصله داشت ولی به نظر میرسید که به کلی بین من و او دیواری موجود است. بالاخره نوشته خود را به پایان رساند و سرش را بلند کرد و چشمش به من افتاد. و برای اولین بار مرا دید و گفت چارلز چیزی میخواهی؟ کاری داری؟ من داخل اتاق رفتم جلوی میزش ایستادم و مند, مند کنان گفتم بابا میخواستم چیزی از شما بپرسم و اینکه مزاحمتان میشوم شوم معثررت میخوا اما مادرم خیلی چیزها درباره ازدواج به من گفته است. مقصودم ازدواج شما و اوست دلم میخواست بدانم. پدرم نگاهی معنی دار به من کرد و حالت تعجب بر چهرش نمودار شد و بعد از اندکی تعمل گفت خیلی چیزهای نراحت کننده داشت پسر جان. در دادگاه گندش در آمد. در واقع تخصیل هیچ کس نبود. من خیلی ماسنتر از او بودم و هیچ شباهتی به هم نداشتیم. برای همه ما بد بود. من پافشاری کردم و گفتم اما بابا در روز تولد من میخواستم بپرسم مادرم به من گفت که روز تولدم در ماه شوآن نیست بلکه پنجم ماه مه است و شما هم به خاطر من ناچار شدید با هم ازدواج کنید. پدرم ناگهان لبخندی زد و گفت: درست است. اگر مقصودت این است بگویم که به وجود آمدن تو طبق تصمیم قبلی نبود. اما این هم یکی از چیزهایی است که در زندگی پیش می‌آید. از جا بلند شد، پهلوی من آمد. دست به گردنم انداخت. این کار برای پدرم که هیچ وقت احساسات محرامیز خود را نشان نمی داد، جستی گرم و خود به خودی و عجیب بود. او گفت، چارلز، چیز مهمی نیست. تو پسر منی، من پدر تو هستم. روز تولد که اهمیتی ندارد. و من می که از ناراحتی و عدم اطمینان آشکار من پریشان شده و می مرا دلداری بدهد. در همین حال که پدرم حرف میزد آخرین آثار خیالات عجیب و غریب مادرم در مغز من نابود میشد میخواستم آخرین تایید را از او بگیرم و میترسیدم روحیهٔ خود را از دست بدهم و نتوانم حرف بزنم از این جهت با عجله گفتم اما بابا مادرم میگوید که شما از او نفرت دارید تغییبش میکنید دور برش جاسوس گذاشتهاید پدرم سرش را تکان داد و گفت گرچه ما با همه اختلافاتی داشتیم، ولی این حرف درست نیست. میدانی پسر جان، فکر چیز است. وقتی آدم سخت آزرده خاطر شد، وقتی اشکالات زیادی به سرش میریزند، حرفهایی میزند که راست نیست. چارز، مادرت خیلی مریض است. این را باید به یاد داشته باشی. پدرم از مادرم به آرامی یاد کرد. معلوم بود که از فکر بیماری اون ناراحت و آزرده شده است. همانطور که از دیدن و اندیشیدن به هر رنجی آزرده میشد. پدرم گفت دلم میخواست او را ببینم. شاید به کمکش کنم. اگر می با او حرف بزنم. در حالی که به صدای مستره با سرد و گوش میدادم به نظرم آمد که هرچه بعدا بین آن درخ داده شد یک زمانی شاید زمان کوتاهی وجود داشته اسکاندو برای هم گرامی بودند و من محصول آن زمانم من در تمام دوران جوانی این نظر را برای خودم حفظ کردم زیرا به من احساس اطمینان و امنیت میبخشید. اما سالها بعد، انگامی که مادرم به دومین حمله بیماری خود دچار شد این فرض و نظر تعیید گشت. فصل 19 پدرم جواب مرا داده بود. می آسوده باشم و در کنار او لذت ببرم. موضوع در این است که اغلب یک جواب ساده برای کودکان کافی است. بعدن فکر می‌کردم که آیا پدرم جدی می‌گفت یا فقط برای تسکین من این حرف را زد. اما هرگز جرأت آن را نیافتم که دوباره موضوع را برای او مطرح کنم. پدرم هم هرگز از این مقوله صحبتی نکرد. در طول تابستان مادرم بهتر می‌شد. اما آنطور که ظاهرا مینمود واقعا حالش بهتر نمیشد. وقتی با اگیر رقاص ملاقات کرد فقط دو هفته طول کشی تا مادرم معتقد شد که او مرد مطلوب اوست. در سپتامبران سال آگیر و مادرم حتی بدون آنکه به نانا بگویند به سانفرانسیسکو رفتند. وقتی برگشتند خانه کوچکی اجاره کردند. چند تو از تعطیلات آخر هفته را ما در این خانه با مادرم ملاقات می‌کردیم و ما نانا در چراگاه و مرتع خودشان ماند و من و سیدنی وقتی با پدرم نبودیم به سراغ نانا می‌رفتیم از این جهت خاطرات من از آقای آگیر خیلی مبهم است یادم می‌آید که مردی خوش برخورد و ملایم بود و گاه به گاه به ما درباره رفتار و کردارمان نصیحت می‌کرد بعد از تقریبا سه ماه او و مادرم جدا شدند و من دیگر او را ندیدم در این دوره غمنگیز روابط ما با مادرمان حالتی ناپایدار و غیر واقعی پیدا کرده بود زیرا مدتی دراز او را ندیده بودیم و وقتی که به نزد ما برگشت بیمار و عملا برای ما مانند بیگانگان بود حالا که او از نانا جدا شده بود اوقات ما بین خانه تقسیم شد خانه او، خانه نانا و خانه پدرم از این جهت خانه بالای تپه که پولت و پدرم در آن بودند و همیشه از ما استقبال می‌کردند و خنده و شوخی می‌نمودند و به نابت موقع خواب برای من قصه می‌گفتند. برای ما پایدارترین و مطمئن ترین جا بود گاهی نصف شب من از جا بلند می و کودکان آرزو می‌کردم به آنها نزدیک تر باشم یواشکی از اتاق خود بیرون می آمدم و درهای راهرو را آزمایش می کردم. اما همه درها همیشه بسته بود. در میان سرسرای ساکت که چراغ آن به دستور پدرم در سراسر شب می سخت, با خودم فکر می کردم از چه می ترسند؟ چرا همه درها را می بندند و احساس می کردم که از دایره حفاظت و امنیت آنها بیرون مندن؟ بعد، وقتی چوب درها تحت تاثیر سرمای ناگهانی شب منقبض میشد می شد، صدای جرق جرق کف اتاق و سرسرا را می شنیدم. در کالیفرنیا همه جا این صدای انقباس چوب ها به گوش می رسید، زیرا تفاوت درجه حرارت بین شب و روز زیاد است. اما وقتی این صداهای خیالنگیز به گوشم می خورد به نظرم می که خانه در هنگام شب که ما همه در خوابیم، برای خودش زندگی اسرارآمیز و حتی شومی دارد. پدرم نیز به این صداهای شبانه حساس بود. او با تخیل نیرومند خود گاهی چونین می‌اندیشید که در اطرافش حوادثی رخ می‌دهد. گاه گاهی اتاقش را ترک می‌گفت و در گوش و کنار خانه پرسه میزد و به جست و جو می پرداخت. اولین بار که صدای او را در سرسرا شنیدم در را باز کردم و بیرون رفتم که ببینم چه میکند. در نور شبانگاه او را با جامعه خواب دیدم. تپانچهاش را به یک دست گرفته بود و آرام آرام به طرف پلکان میرفت. آهسته گفتم: پدر چه خبر است؟ پدرم آهسته جواب داد، ایس پسر. گمانم صدای کسی را شنیدم. حال دارم خانه را میکردم. بخواب اما من نرفتم بخوابم از ترس در کف سرسرا میخکوب شدم صدای پدرم رو که در طبقه پایین میگشت از اتاقی به اتاقی میرفت چراخ ها رو روشن و در را باز میکرد و دوباره میبست چراغ را خاموش میکرد میشنیدم با گوشم او را تغییب میکردم دوباره بالا میآمد مرا دید که منتظر استادم گفت کسی نبود پسر جان برو بخواب و به اتاقش رفت صدای بسته شدن در و گشتن کلید را در قاب شنیدم احساس ترس و تنهایی کردم به اتاق خودمان دویدم و در را به سرعت بستم و کلید را در قفل چرخاندم خیالم راحت تر شد کورمار کورمال به طرف رخت خواب رفتم و توی آن پریدم سیدنی حتی بیدار هم نشده بود صدای او را می که به آرامی در رخت خواب دیگر نفس می احساس امنیت کردم گویی موجی گرم و قوی از برادرم به چانه به من آمد چه خوب بود که او آنجا بود چه خوب بود که من و سیدنی برادر هم بودیم ما به هم تعلق داشتیم پسران چاپلین بودیم